اعوذ بالله <سؤال> من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمين صل الله علیه سيدنا رسول الله و آلیف القیبین و آخرین و حسونین و اللہ بخواهر حدوالی مجمعین و برحمتك و رحمتك هر صدقاته هر چند تا عنوانی که معلوم شد یک عنوانشو در اینجا بودن در مجموعه روایات ما و روایات احرس و نم بیشتیه که عنوانه عنوان سبه عنوان حقنه عنوان لعنه عنوان وقیعه که المؤمنه دیگران عنوان فکشه عنوان بداعت و از زبانی به اصلا زبان برد به این مناسبت از این مقدار روایت رو خوندید یه مقدار خارج شدیم از بعد چون کاری نبود یه مقداری خارج شدیم این مناسبتی ای که مخصوصاً هم در قدیم و هم در جدید اهل سنت خیلی افرار دارن که شیعه نوصد به حابه می کنن شد مثال حابه این رو گفتیم یه توضیحی ارز بکنیم این مقداری روایت خودمونها و مطاری کرد. اولا این مطلب که سب به صحابه که آقا اینو بعضیشون کفر می کنن به لحاظ تاریخی تا که ما شواهد روشن و عقی و جزمی داریم و در کتب هم موجوده اگر به این طور چیزها رو افتحاب کنن اول باید به سماغ خود صحابه رن اول خود صحابه این کار رو انجام دارن ببینید راجع به سر حالا من یک توضیحی اجمالی ارزو کنم روایات از باید این حدی که من الان از کتاب جامع و سقیر سیوتی مونم روایات دیگه هم هست لیکن این روایاتی که اولش چون گروه علف بار روایات رو ایشون در این حرف میم که من الان از فیض القدیه که شرح این کتاب جامع و سقیره این مال مناوی به اسطلاح حلامی منابی مروف است. شمهش خیلی نفتن علمی خیلی پخته نیست. اما خب جز شمهش بسیار معروفه. دیگه، کتر خیلی معروفه. علیه سنه. فیض و, و منابی است. مگر بعضها کسی تحقیق کرده باشه که توضیحات بیشتری این ازایی که کار کرده کم میدار کارشن. در باز این مسئله سرد ایشون جلال سیو سه تا روایت اوهد یکی منصب به اصحابی فعلیه لعنت الله و ملائکت و ناس عشمعی بیشتر جنبه بقول ما جمعه خکم تطلیفی و مونوی داره آثار خاصی نداره بله بعدم فهمیده از تبرانی فقط نهار کردن ابن عباس خب میدونی ابن عباس هم رقایتش از رسول الله محل اشکال کلیست دیگه اشکال ده سال یا ده ساله بوده دیگه توضیح نهیدن بله بعد خود جلال سیوپی نوشته حسنا این حدیث رو ادعا کرده حسنا باکنه حیثمی نوشته فیح عبدالله ابن شراش و هوا زعیفون یکیش نیه حدیثی که دارن نیه یکیش اینه منصب و انبیا قتل و منصب و اصحابی کله این جمعه وضعی هم داره کسی که انبیاء رو سب بکنه کشته میشه چیزی که از خواب من رو سر بکنه شلال شده. یعنی خواسبه یعنی تعذیر میشه. خود این رو در کتاب کتاب اهل سنت انه علیه که قال رسول الله این رو ایشون خودش رمز زاد زاد یعنی ضعیف این روایت رو با اینکه که از علیه ربیتالیمون هم که از رمز ضعیف برش در اون وقت این در شرحش بره نوشته که من شع من ش هم اینه که یک شخص به نام خوب عمری از نوبه های عمره ختاب استاد خود همین تو است که نرو کرده قال تل میزان رما نسا نسائی بهکس که میزان میزان ذی قال تلسان نهجه و گفت این خبر من کرد است و از مقال رواتو هم رواتو هم کل به هم سقا ایلال امری یه اسم نبوده این به باید از کردم در تبرانی که آمده من مراجعه کردم از موسف نجعبر انا عبیه انا عبیه انا علیه قال رسول الله یعنی در میان مسادر احل شنه حدیثی که راجع به صبت صحابه باشه که اون تحضیح میشه منحصر به این روایتی که علمه ما نراجعه خود اونا ندارم من صبت بله انبیاء قتل و من صبت اصحابی جلی تقرد فرم بین اشکالش نه روی علمه ما اشکال نگردن یه برگران به اینطور از روات خودشون اویدالله اونه امدالله اما عمری بسن و من موزه از کلم که از آنو گفت که در امادی شیخ مفتوسی هم آمده راسته و شیخ وسائل هم داره اونجا داره منصب نبیم خوده و منصب صاحب نبی یه اینجوره اونجا تعدیش اینه اصحابی نیست اون که در مسادر ماست صاحب نبی و توضیح دادم اگر آنی که کمپیلترزا اینه استخارش کنن که هم به توضیحش ارز بخونن من چون صابرن تو اوزیادش داده بودم حالا اینیتش بگه بکنه و من ثبه از صاحب نبیم تبدیل صاحب نبی رو بریم جله ما عرض یکی از عیمه ما که خیلی احل سنت از اون مسند نقرد کردن حدیث نقرد کردن به اصناد الى رسول الله حد رضا هست تقریبا میشه بکنی هیچ کدوم از عیمه ما به این درجه از اشان مسند نقرد نشده خیلی نه رو تنه شاید هفته تا, هفته تا مجموع یه یا شاید نزیگه سخت تا نیشه. خیلی حسانی به متعدد هست و قالبشم هم به قالبشم بعدش هم به نظر من جلیه نستم بلا اووردین جله نه سندش میدونم خب همونه امالیم از سعیفه گرفته از سنده عزیزه حسن صحیفه رضوان داره امالی آمد. هم از صحیفه رضوان هست فهمید؟ بعد از بعد عملی از شیخ مفید توسی؟ چرا؟ حالا چرا امالی از توسی هم داره؟ حالا صحیفه تندشی بخونید خود نسخه صحیفه چون صحیفه خیلی سند داره. حالا شروع به اسنادی همین مقدار نوشته؟ مال عملی رو بخون مال عملی رو وردین جو عملی نیست توسی هم همستون کسی نمون جامعه هم از کیفیت صدا نکرده چیه اصطلاح ثوابتی انصاران و امپراتوریه طاقو با انصاران از عمر منجستران محمد از کی بعدش اون از تمافهبل کهسبنظر د بله این است که تای ضا کرده ب پسر بهنظر د بده اوللحا همه ابن بله نشی دی از خدمتون این تصور نشه که این حدیث در ما آمده اون صحی طور که نقل شده یا همین صندلی که اینجا آمده تمام اینها برمیگرده به اصالی متعددی که حالا اسمشه بعد یه و رضا دو از کردم بتون. مثلا در کتاب میزان اعتدار یه میگه رو و اندلحسن رضا کبراسن و جزن یعنی به عباس دیگر این اسم نداره مثلا مجموع هزار هزار تا دویست حدیثه بعد یه سهیفت بعد یه سهیفت سهیفت لب و اندلحسن رضا سهیفت بعد جهان شان به شده رضا علیه السلام بعد جهان شده نه اینه که دیگه مصند رضا علیه این اصطلاحات مختلفی از کل این سعیفت رضا مهزم رواسیش اهل سانده از بزرگان و معاری ما نداریم پس, پس هم پس بزنگی عنه رضا علیه مراد ما به نحوه مصند یعنی الى رسول الله نداریم اون چه که به نحو مسند اومده ایناست خود این حدیث سلف از زهره چون صد یک مقاله حاجی به سلف از این حدیث احادیث دیگه این حدیث سلف از زهره جز همین مسانیده جز همین سیرت صاحب درزاست خود حدیث سلف از زهره اونم همینطوره اون هم همین از هم جز احادیثی که اول حضرت رضا رضی الله عنه عیه رسول الله که قال رسول الله مثلا کلمت لا اله الله است علی یوهان پس ما در حقیقت خود ما به عنوان این که از, ای که از امام ها نداریم این که میگن در مسادر ما نیست بیگیم منم مثلا این صحیفت و مقداری که سنیا نرده کردن ما نرده نگردن زیدی ها نرده کردن مثلا من این مصخه از مصند زید دارم که زیدش مصند ازید رضا خود زیدی ها این رو چاک کردن با صحیفت رو مصند زید اما این که بما کن معجبش کسی که این رو آورده اول در درجه اول اهل سنت است بعد از اون هم مرحوم شیخ صدوق در اون اخبار رضا زیاد آورده اساتید هم متعدده تا این احسان یاد که یکیش لا باز اجنالت همه در جهالت با هم شریک و معظم ایشون ظاهرا اهل سنت هم. اگر این مثلا تصلاحات زیاد داشته همچنا شیعه به شرطان مثلا در شیعه بودم مثلا یه جوشی ای مثلا، حالا زیدی بوده شو بیگه بود حاله اما در مسادر ما و اهل بیت از راقه اهل بیت ما نداریم سنیه ها هم همین رو نعبی کردن تو سی خوضا به دام آمده علایه حاله فعلا این روایت من هم الانبیاء قتل و من به اصحابی جلد این الان منحسر است در میان اهل سنت و بین ما اونایی اونگاهی که محسر در مسادر کتاب معروفه ما هم نیابده منحسر است به نرمی که از حضرت رضا از آباره شده یا از حضرت موسن جعفر آباره در کتاب احلی از موسن جعفر شروع میکنه اما در کتب ما از علی بن موسی شروع شده انعبی انعباره ان رسول الله دقیق فرمونده این هم به حدیث دوم که این هم به اهل بید برمی خود اهل سنت ندارن حدیث ثبوت می در این جوازه من سب به علیه هم فقط سببنیم این حدیث هم در مصند احمد هست هم در مصندرک حاکم هست خود ایشان نشه تقیبا از سرمین هم قصه داره میگه رفتم پیش ام سلمه ام سلمه گفت اگه سم با رسول الله بی کن چرا شما در نادی کنم داره یه انجوان ها چون چون محافظی که داریم رسول الله صد می پینیم گفتم ما کیجور دارست ما که رسل می پین که من خال انی سمیه رسول الله یهو من سبب علیم فرستم و من سببنی فرستم الله تنها حدیثی در این سه خنوان صحیحه همینه خیلی هم عجیبه واقعا با که ام سلمه اعتراض میکنه نشون داده میشه که اصلا صحابه در مدینه خیلی راحت علیم نرسال رو سر میکنه یعنی اولین کسانی که به طور عمومی که عمرسیدین خینادی کردن مثلا توی مراکز شما توی مجموعه های شما انجمن های شما رسما علی ابن طالب صبر تعالی و از این معلوم میشه که حتی بعد از این هم رعایت نکرده اینطور نبود که مثلا بیان دست در بدن این میگم مثلا معاویه سنت گذاشت که در نماز جمعه لعن علی نبی تعالی رو فقط در نماز جمعه خودشه بود که در تاریخ دارن که وقتی عمر بن عبد العزيز دست اول بود که سبع از خود بردارن یک نفری هست نام نوی نوی عمرو این بولند شد گفت از سنن از سنه یا امیرالمومنین شو که سنت رسول الله را در برید مثلا سلطان در این سال سال سال از سال تا یه از سنن رسول الله بود که سن و نماز نرده و از این عبارت من میشه که نه بحث نماز و خطره نبوده اصلا تو خود مدینه بوده بعد یه نقطه ای رو من چون خیلی به لطیفه بله ارس کنم بله اینجا ایشون من سبب بله الانبیاء خود منابی یک شرگی داره من این شرگ رو بکنم یک سوزیه بدن ایشون میگه من سبب الانبیاء خوتل انتحاتی و حرمت من هر سلم هم یعنی خدا و استخفاتی به حقهی و داره که کفر قال فیسری ایراء الانبیاء به سبب او غیرهی که ای به این من هم کفر حتی من غالف صوغه و برو نه مرا داشتیم می‌شدم خاکی شده مراد داشت اهانتی در باشه. یورید و بذاری که ای بهو کفرن کفران لاهدم. ولاتو بر صحبت و اند جمی جمع نال قلمام. قبل اشکه ایه. من باشه مرا رازیین مردکر ما رو شو بادیم. در تمام من سپر از های جلید تقدیرم ولا یافتن. از دقت کنی. تعذیر ولای یکتر خلافاً لبعض مالکیه و لبعض مننا صدیشون شافعیه بعض از مالکیه و شافعیه ها فی صاب به شیخین بخصیص صاب به شیخین یکتر اما بقیهش یکتر غیر از شیخین ولبعض باز بعض از بقیه ها خارش شاید فی همه ها و حسنه بعضی آقا از روزن به شیخین و سب به حسنه و قرص اما غیر این چهار مورد دیگه اونجا به قسم نکیشه این سوال اینه وقتی روایت که نگاه میکنه این منصب صد بطریم برای الله اونی که در متن روایت وارد شده خیلی حجیبه اینه واقعا انسان تحجب میکنه اونی که در متن روایت وارد شده صد خداست نمیگم قایل میزن فقط دو قول نرکرد یه قول این که در خصوص صحب شیخه این یکترد یه هم بگه ساق و و ساق بول حسنه پس آن اون حدیث معروف داره و ابو همه خیلی رو من همه سنین هم که پیدا پدر حسن حسین از خودش خب این سوال واقعا خیلی عجیبه البته اهل سنت داره اگر هست کتاب اینه بیا که من یه وقتی تو میزانه اصداد زم یاد نگردم تو ترجمه بود این حدیث اول بعد نمشه مجرود حدیث موجوده سیوکی هم اینجا نیورده جلال, این جلال سیوکی من صد عبا و عبابکت عمر فقط کفر اینم داره امتر اینجای جلال سیوکی نیورده خود بیزانه اعتنال داره من صد و عبابکت و عمر فقط کفر در شهر حال یک نفری رو گرده میزان توی بیزانه ما الان اسمش زهن به ذهنم نسیم هرچم پکن به ذهنم نهاره نسیم پیدا شکنم ارسان خدمت اون که خیلی یه عجیبه با وجود روایتی ک در این که سبل علیه نبی با سبل الله قائل نداره خیلی عجیبه. واقعا ترکیب آگه <تصفيق> اما در سبل شیخه با نبودن روایت و از او عجیدتر در سبل امام حسن و امام حسین در سبل حسنه قائل شدند این که موجود کفر میشه و کشه میشه اما در سبل علیه نبی تاله نبی. خب این معنی شی اصلا این توضیح شی چطور میشه و این رب... ربایت اصلا سه تا ربایت که این ربایت و یقینا همین ربایت سوم هم صحیحه. این روایت من صدق علیم تقصد منیم. قصد هم صحیحش همینه. چطور میشه با وجود ربایت صحیحی که در مقام وجود داره؟ اون یکی به ذهن من میرسه. ولی علم و این در الله نکته تنها نقطه که اینها قبول نکردن ربایت رو به شخص با بدن. بیرن خود کرد. مشکل شهره جواب است. آکومون بحث می کردم. نفهمیدم. خب همین چه دره من خبر ندل که یختن. اون چه من چون اعتقادم اینه چون دیدن صحابه از زمان ماوی رفتنصد اهده علی نوی تال کردن کرد. اون نقطه ای نداره خ چرا از او رفیت بکنن دقذ بکن؟ چه نقطه ای داره؟ از کردن این رووارد که خیلی معروف در بین نهد سنت خیلی هم صنعت داره. شاید اونی که منم که اجمالدر هست میکنه الان کسال مییدشا ۸ مورد نزدیک 100 مورد هم سنندد متعدده هم مع های متعدده، در این حدیث دیگه در عین نه خیلی داره چون یه حدیث طولانیه هی قتاعاتش اول کنه حدیث اسماده سعد بن ابي وقاص پدر عمر سن. عبی بقاس سعد ابي وقاص خودش مالک سعد بن مالک به سعد بن ابي وقاص این چند دور نرسید چون چند تا پسر داره چند تا پسرش سر کدوم ازش نرو کرده چند پسر رو می‌شناسم خیلی چند طولانیه ما خدایا ما این حدیث سعده جمع بکنم خودش یک تراس میشه یک جزبه میشه همین حدیث سعده که میگه متنش هم مختلفه در شدیش محل شاهد شاهده مثلا از سعده نقال رسول الله انتم نیل حدید انتم نیمنزد راوی مهم و محروف حدیث منزل هم همیشونه و هم صحیحه کیه شرابی که خوشهلا دارید استاد دولت سفری خوشهلا دارید استاد سفابو بچه خوشهلا دارید استاد انقدر کی ترجمه باشه که از نه نوشته خودش نه یک محصب و عبابت و عمر فقط،, فقط کفرم داره چلا من خودم به این همون جوز جایی چرا یه خوبه که کم خودشون حکم میکنن که این حدیث مجعوده حدیث صحیحشون اینه دقیقه مفرمید؟ اجامم دارم برد. نه؟, برد نه یک دارم از خب عبابت و عمر فقط, فقط،, فقط کفرم نمیداره این هم این یک حدیث واحد قبل و بعد نداره یکی کس ده... میدونم خودشون نه... نهی که میگن ضعیبون هست میگن و حدیث صحیح رو سردیتر علایه حالا اون مثل قصه سعدر نزی و قاز انسان کلانی توی بعضی تکه از اولشه میشه اینطوریه معاویه که حج یا پنجه یا پنجه معاویه حج بعد سرد نبییت ماشون بهت نکرد ولی دوز متقلدی ن بعدش گفت که تو چرا سر اووا ها را میی مالکه لا تتصاب با اووا ها ها هم توه. بعد سرد میگه وسته کرا ها پیدان بر بعدیشگه یکی که به من میفهمن و تمام دنیا برای ب میگه میگه همین انتر مییم من ز هاروون موساسی که به نظرم سهقای حدیث راه معرببال خیلیله اطیان را اعتجان بدن، یکی هم یک حدیث دیاره میتوزن سه دو حدیث رو نرم این حدیث خیلی یعنی در اونجا تصریح میکنن که ما به سر میگه ما لکلا تصوب و عواتراب اونی که من به ذهنم میاد تنها توجیهی که با وجود روایت صحیح و صریح و روشن یکی جوی برده و من سبب علیه و من سببی و این واقعا برای انسان تعجب آور است که نگاه می‌کند در کلمات اینها با وجود روایت قائل نیستند که به این موجب قتل میشه اما راجع به حسن و راجع به مثلا شیخین قائل هستند لاقل ایدهشون که سبب اینها موجب قتل میشه همین مذهب از اصحاب فنه الهی الله اما اینکه موجب قتل اینها میشه ندارند فقط منحصر به روایت ماست اهل بیست خودشون نداردن بابی دارن باب مثلا لایجور رو سبه از خواب نبی به عنوان باب دارن اما عملا ندارن و حالا برای این که معلوم بشه که اینا واقعا من ترجم میکنم این همه اصرار در مسئله که پیغمبر فرموز سباب المسلم مسلم فشوبان و این بحثایی که هست این روایتیه که از اجاریه کار بخاری تنها بار اینو آورده من تو ذهنم بود که متن کاملا بعد یاد دیدن اما این دو سه که ایشا مراجعه کردم این متن نبود مسلم هم آورده مسلم محنش کامله این میخوان که بحث زیادتری انجام حال کنن مجموعه روایتی که روش صب و شت موافق شو اینا جمع بکنن بحث بشن میشه این روایت رو نقض میکنه از مالکیب نه آوز آن قمار. این دواد مفصل کاند اممالو و نزیر می‌ما اخو الله علی الرسوله، می‌ما لبیوچه علیه المسلمون دخیل ملاره‌ها، فکاند در نبی صلّا الله عليه و آله و سلم خاصه در خاصه فکان یون فوق. بله، اول این بحثیه ای است نام. هست این دهادیس مورد هستامانی بسندیش. زمری میگه انم مالک ابن اوس خود مالک را رو از نداره قال ارسل عمر حدسهو قال ارسل علیه عمر ابن الخطاب تجهت او هین فعالا نهار و از وسط روز حوال بالا بود قال فوجه دو فی بیدی بی جالسن علا سریر مالی یعنی ریوار جمع که مثل متکا متکن علا وسادت من عدم عدم این پوست فقال یا مالو ترخیم برسه یا مالکو اندهو قد دفت اهل و من من قومه و قد امت و فیهم درن خیلی رفت این گروهی از این فاملتو توی اوزر من مخوام بینا بکنیم اونم نگه قد حال ندارم، ایشون گفت نه اصلا با تخصیل بکنیم در اینجا جا که مشغول صحبت بودین بله فجا قال فجا یرفه یرفه غلام عمره احتمالا عرب نبوده غیر عرب جای یرفع فقال هلکی امیر از مؤمنین فی اثمان و عبد الرحمان ابن و زبیر و سر سعد ابن نوی برقاست فقال عمر نه البته چارو میم اضافه کردن که ترهیم باشد همه پنجونی هیچون در این روز نزدن فعظن لهم فدخل سم جایباز یرفع آمد فقال هلکی فی عباس و حلی قال نه فأذن از کنین حدیث با همین من در کتاب کافی هم هست در اگزام هم هست پنج بار دو سه بارش نگاه که یادم میاد داشتیم محن کامل اما مسلم که مسلم کامل داری فقال هم یا همیر المؤمنین اقر بینی و بین ها در کار در آسن و ما شده لگه هیچ صفتی از صفات شر رو کم نکرد. اقض بینی و بینها دل کاض دل آسم آسم از گناه از غادر از غرب هیلواز مکار الخائم فقال ار اوم عجل یا امیر المؤمنین راست میگه بین هم و عره همیر هم با هم دعوا دار حالا این شخصی که ایشون از شتاب این اوصاف عجیبه بود مراد علیم ندی علی طالب بیمین؟ اقض بینی و بینی یعنی بین علیم خب فقال مالک اپنوز یو خیل و علیم آنهم کانو قدم اوهم را زد. فقال امر اتاق داره حالا یه هم چند دور خونده شده یه آرام باشه. بعد شو میکنه به صحبت کرد. اینجا خودش در فقاهه جماعه اتام من ال اولاما خود اینها گیر کردند که عباس از اون سر امویتی هم نه که ما صاحب سر جبه الیب ندیده شده با اون آوا. حالا مخفیانه نگاه کن که عباس روز در سریف الیب ندیده شده پس درست داده شد تا با تو دار با یاد بکنه. از اون برم این اوصاف عجیب و غریب قال جماع اصول منر علمان معناه هادل کاذب انلم یونسف اگر منصف نباشه قاضی ببینه <تصفح> و قاضی عیاد قال المازری هادل لحظه لذیبه لا یلی قضاه او به عباس حالا از گیر کردم از اون هم دارن که سباب مسلم فسوق و اینجا به کلمه لا یلی قضاه رو به عباس و هاشل علیه آن یکون افیه بعضو هاله استفاده اوصاف فزلاهم کلها. ولسنا نخته ابی اسمی لال نبی صلّا الله علیه و سلم. من به زن و در و حدیثی در دو کتاب از کتاب و از فقط کتاب بعد کتاب الله پیش اینها همین مسلم و بخاری هر دوش این حدیث رو بردن وقت حمل حاضر معنا بعض ناس حتی من به اینجا رسیدن علا ازال حاضر لفظ نسخه کتاب مسلمه که نوشتن اینجا رو خودشون خرده به هم زدن مبتزله مبتزله به مبتزل قسم درمه اینجا چه برداشتن خرد بدن تورهن ان اثبات مثل هادا هم بابا شما بپنیم خود و مستنیم که این حدیث و بردیو بخاری بعد دیگه بله قالت موازری بله بعد شروع میکنه به توجیه ها سو حالا من چون این حدیث بعد تواهید تا آخرش میخونم تو معلوم بشه که مشکل اینطور نبوده که این ها فقال عمر اختر آرام باشید. تو تو یعنی از این آرامش اون اون شد الان درس انشدن درسه هر گوش واشام الذي باذنه و السماء و از تعلمون ان رسول الله صلى الله عليه و وسلم قال لا نور است جلو نور است نشه لازموره هم تلفظ شده ما ترکنا سفره مطلبی رو که من از خودم رسالترم در یکی از کتب من در همین جو در همینجا در شریین حدیث در کتاب این چیه چی اسمشه؟ سلام اسمش اینه که خودم بردم بردم اینجا فضل در کتاب فضل واقعی داره این متنی که میگن نهن المعاشر انبیان یا لانوره ثابت نیست. آجی عمومی گفته ثابت نیست. متن اینه ان لانوره لانوره یا لانور است. معاشر انبیان می دونید کی اشکال یه اشغال خیلی جدیدی که اونان من سابقا هم عرض اونا برای اینکه فهمیدن با این اشکال برخورد نکنن بختم این محضی ثابت نیست محضی اینه قال لا نورست ما ترکنه ها صدق قالو نه خیلی درچیه آدم شاخ درمیاره از از دروگویه اینا که مثلا عمر به علیه نوریتالیو و پیغمبر رو لا نورست ما ترکنه خب پس این دعوی از زهرا و از سرمیر این ها کجا رفت نه خودشن لذا آمدن توجیه کردن ثم اقبل على العباس و علي انتبا انشدكم انشدكم الله عبد الله اللدي ابن تبو سما و الار اعلمون ان رسول الله قال لا مورث ما تركنا صدقتن قالوا نعم خیلی عجیب. این اول به جماعت گفت یعنی به اون طلحه زبیر زبیر عفاد گفت بعدم به این گفت فقال عمر ان الله جل وعلا كان خص رسوله صلى الله عليه و ال و سلم بخاصته لم يخصص به ها اهدن غیره یا لم یخصصون درست قال ما افا الله على رسوله من اهل القرآن اینا ای احتاج به شهر هایی که این بود وقتی شنه الله ولی رسول بله بعد داشته ما عدوی حلق راید ال آیت علیتی قبل قال فقصن رسول الله بینکم اموال بننزیر اگر قسمه این چی یعنی میرکی شد در پیغمبر بینات بخشید اولا جاش اینجا نیست دارم توضیح بدم خود اهل سنت دید یعنی بری این ندید اینجوری نبوده این هفت تا باق بوده مالی یه روگی تو اینجا بوده و او به پیغمبر بخشیده به نهر تقریبا وسیعت بوده تولا مست اصلا علیکم ولا اخده ها دو نکنم حتی بقیه ها در مال اسمان نمیفرم اگه داده ها که بعد ارت نیست. و این سر چی بحث می مثلا در اینجا خود اهل سنت حدیثی دارن خیلی مفصله اون حدیثی که هست اینه که برده ایشنا هم داره خودش برد بله میاره اون حدیثی که برد بله میاره ببینید عبارت اینه که انا آیشه این من میخونم این چون این حدیث در کساب بخاری هم آمده علمای ما بحث و قضو فدک بردن خیلی عجیبه این خود آیشه تصویر رو اوسع از فدک گرفته. انا آیشه انها اخبرت کن این راوی از آیشه عربه است عربه ابن زبای پسر برادر آیشه است یعنی مثلا آیشه همه شیش انا فاطمه بنت رسول الله صلی اللہ علیه ارسلت الى عبی بکر صدیق تسالهو ميراث آمه رسول الله خیلی عجیب از این اینا به نظر از بس محضشون با حجه خبر گره خورده بود دو سرکه اینجا بگید قلمت هست رسول الله یک بود ما لانور هست ما ترحیمه صدره از اون وقت میکرد فاطمه سلام الله علیه جاعت تسالهو ميراث آمه رسول الله یه سرکه به فاطمه بما عفى الله عليه ببینید دقت بکنید این احتياج خیلی شعمزاره انصافا با اینکه های فراوان در حضرت نشون شده نظر نچون مثلا حق مطلق برداو بکنن میشد این در یه بحث من اشاره یکیش یکی شانه عایشه بهتر از خسرو بود ما توست حضرت ده تا سه چیز رو خواستند طبق این گفتار یکی عمواری بوده که در مدینه بوده مما عفى الله عليه بالمدینه کلمه فی استراهان ماییست که در الله بدون جنگ رسیده این اصلاح هم بشه. و فدک این دوتا و ما بقیه من خمس خیلی برد بقیه مطالبات از ذرا سه چی بوده این احتیاج به شهر داره میگم کتاب های دویادی تصور در باید فدک نوشته شده متاسفانه. این به نظر من شرک که آیش داده خیلی دقیق که حضرت زهره در حقیقت سه چیز رو مطالبه کردن از ابو برد یکی خیل حضرت رسول در مدینه یکی صدق و یکی ما من منخمس خیلد از اون بر اینجا میگه عمر به علی با از تعلمان رسول الله قال یا نورست ما ترکنا و صدقه قالا نه نمیتونی عجیب توزه عجیب روزید عمر ان الله جلده از کام خست رسوله بود. به خواسته تندن میخصص به ها عهدن غیره یعنی خیلی به اصطلا قال ما افالله فقسم رسول الله بینکم شاید بینکم مراد بین مسلمی باشه اما بین مسلمی باشی چون مثلا یه مطالبه ایرخ رو کنن اموال برن نزید فوالله مست اثر علیکم ولا اخذ آدونکم حتا بقیه ها مال دیگه یعنی نمی‌فهمین اصلا اشاره به یک مالی بود در زندگی که مورد اختلاف به صدها اینها بین حضرت علی و بین عباس عمویشون بود. فکا رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم یاخذ من هنافقه السنت ثم یج على ما بقی اسوته المال یعنی در مورد مصریان ها ثم حالا این خیلی عجیبه اصلا فکر کنم پیغمبر این کارو میکنه ان شاء الله و تکم بالله عز به اذن هی کبوم مسما سماء وله ارض از تعلمون این رو میدینی شما؟ قالو نه سمه نشده عباسم و علیم به مثل ما نشده دهید خب از تعلمان داره قالو نه خب اگه بیزنید شده درمان میکنم دیگه. خیلی برچیده نمیتونه فلم ما صوفی رسول الله صلی الله علیه قال ابو بک انه ولی رسول الله معلبا در اصطلاحات اهل خلیفه آمده کلمه ولی رو به کار می‌بندن، جای به کار برده شده. اونا بیشتر رو کلمه خلافت داره. من منسم بار ارث، خلافت یک بار ارزشی نداره. کسی که بعد از کسی میاد خلیفه میشه. مثلا یک کسی جا میشه، بولان میشه که این جاشما میاد خلیفه. خلیفه. فلان ما صوفی است، خجی فقال ابو انه ولی رسول الله. خجی شما، تطلب میراثی که ابن اخی از اون من میگه که این افعال ما برد میراثه که من ابن عقیق این که اگر تعلمانی که رسولا کنه لاموره است خود اینجا خودش دید و یک رو ها میراث امرهتی من عبیه ها البته فتوایی ما و امه علیه مسلم طبعه انگله علمه این است که اگر زن باش و باشه و با امون باشه به امون نمیرسه دختر باشه و کل ما نستشون هم که در کتاب ذکر شده نصفش به دختر میشه، نسبیه که میمونه در از ذله ها. ها اصلا ی تاثیر به اصطلاح. چون اهل سنت میایه دختر بود، نصفش به دختر میذنه، نصفش به طلاقه بعیده، عصبه نمیان به اصطلاح. قانون میذار اینجا اش ذره عمر میگه شما آمدین میراث خاصید. تو به عنوان امون نصف این اینم علی بن ابی طالب میگاسو خانومش دختر رسول الله. و لو با هذا میراث امراعی من ابیدک، من ابیها. ثوان ابوبکر قال رسول الله ما نور است ما, ما ترکناه ما ترکنا سرغت حالا دقت میکنه. از اون ور شما میدونید که پیغمبر درو اینا میگن برای ما میدونه پیغمبر درو از اون ور دیگه پیغمبر ابوبکر اینه برای تو کرد این عین عباراتش میگم فرعیت شما شما اعتقادتون به ابوبکر این بود فرعیت شما کاذبات آثما قادرن خائنن سنت این بود شینه ابو بکر کاذب و خائن و غادر خیلی بذ این حدیث حالا خرابی معنوی داره همه چی داره یک چیز قریبی در خب درشم خودشون گفت من جواب جوابارو بخونم جواز این که ما تعبیر کردن تعبیر کردن خب شما این همه تعبیر به این گل پوشادی رو قبول میکنین که علیه ناری صادق و عباس تعبیرا راجع به ابو بگن کاذب و ناس من تعمیره با این اونتو بگر و اللهو یعلم انهو انهو انه انه لساد منبار رو راشدن من تا به اون هر توم توفیه بگرد و انه ولی و رسول الله و ولی و عبیدت فرعی کمانی کادمن آتمن قادرن خائنا این به این راویه که ای کلامش روی زهن توی راست پیدستانش این چاسته هست بگه اینطور همه جاهن ب بگیره و الله علم امیله صادکن بار اون را شد و تا به اون اولی تو ها تو به انت و حاض و انتما جمعی آن و امرک واحد. حالا من میشه قبلزین یک بار آمده این خیلی عجیبه به گیر توانی جتنی و حاض و انتما ها جمعی آن و امرک واحد، ف تو، ها الینا و قتو ما فقلتو اینشر دفت ها ال ها ال عل ها اهد الله ان تعملا تو ها بلد کار یعمله و ص الله اینم خیلی عجی یعنی معلوم میشه که در زمان پیدر این اصلا با عنوان صدقه بوده این تعبیر اینطوره. و پیغمدن این یک نفر متبلی گذاشیم به پول این میگه میکنه میگه من هم به این عنوان به شما میزند خ خب اگه این عنوان میاز چیه؟ اگر بحث سریعی که متولیه بشیم این یفلوب و سهم زوجته تو هم تفلوب و لذا خود اهلستانت گیر کردن چی کارش بکنن به این نفیجه رسیدن که مرادین ما متولیه نصف بشیم من به عنوان بر متولیه نصف بشم ایشون هم به خاطر خانمش متولیه نصف بشیم آیا کده هم سریعی گفته تولیت خواب جز نیراز دارم من ترجممم حالا با این توجید کار بستر میشه تولیت که جز میراث نیست که طبق درجات اقت تخصیم بندی بشه انتم ملاقی همه بلدی کان یعنی رسول الله تا ها بداره. ای خیلی عجیبه شما این از من گرفتیم به این عنوان که متولی باشه آل اکداله آلا نه آل اصمه جی اتماعی لعقضی بین همان. خیلی عجیب اصلا ما هر فکر میکنیم این دقیقا اولش کی بوده، چجوری بوده؟ ولا والله لا عقبی بینکما دیگر از ذلك حتا تقوم الساعه. فإن اگر شما آنها فردا الهی. بازم نیست. نسوگت ابواس تو چه هست؟ علی نبی. حالا علامات حدیث بسیار حدیث عجیبی است در مسائل من این. چون چند دیگه خونده نمیشه اجازه من امروز هم به بفهمش بکنم دیگه این بس در مقابل این حرف ها و این کارهای زشت خطبه نهجو بلاغه هست که حضرت شماره شیست و که اهل شام رو در جنگ سفین سرد میکنن اصحابیشون حضرت سایم نیه اصل و منطقون و سبابی این باید در نهجو بلاغه آمده در کتاب سفین نصر مزاهم آمده من از این کتاب آیه جلالی از دوستان برگان عدیزان صفحه جلد دو صفحه کنسل कि که عبارتش با سند سندش البته به حسب ظاهر ضعیفه ان عبدالله ابن شریف شریخ قاضی معروف قال خرج ابو جن که معروف است او امر بن همه یظهران البراءه و نعم من اهل شام فرسل الیه ما علی علی السلام ان کفوا دست مگر اما دل اما یبلغن عن کوه فعهیا آمد آن دو نفر هر دو شام شقیق شدند دیگر امر بن همه معاویه به این عنوان که اینجوزه خاطرین و عثمانه حالی یا کشتشو به دست ماری سم حساب مسئول شد دست مار سم نزد ما. و حضر ندیرم که خب معروف است که کشت در نزدگیشون فقالا امیعا میردون الاسنا مهمقی آله بلا آله اولیسون اول مبتلی آله بلا آله فلمه منع تما منشت میه چرا نسیم بونه با شدیم آله کره تو لکم انتکونو لعانین شتامین تشتمون و تتبرعون لو دو وصفتون مسابی فقلتم فقلتون من سیرتهن کدا و کدا و من عملهن کدا و کدا کان اصببه پیل و ولو قلتم و کان لعنکم ایا هم و من هم حال فرق اون مسلم با این حدیث که با قولیان سرمیش هم خیلی ها تمام نیست ولو قلتم مکان لعنکم ایا هم و براعتکم من هم اللهم مهدم دماغنا و دماغم و اصل ذات بیننا و بینه وحده هم من دلالته هم حتی یعرف الحب من هم من جهله و یرعنی انلغی یرعنی منذجه دوشیم ولو قدوان من له به کانهالا احب الیه و خیرن لکن فقالا یا امیر المؤمنین نقبل و عرضتک و نتعدب و بعددک و قال امرو ابن الحمق امیوالله یا امیر المؤمنین ما عجب تو ولا بایع تو که علا بینی و بینک ولا ارادت مال توتیمین ولا تماس سلطان یورت و به این ها تو تحتیقه لابن از اضافه که از در کتاب در ای سفینه ولیکن عجب تو که لخصال خمس انکه ابن عم رسول الله و اولو من آمنده و زوج و سیلت نساء ام فاطمه بنت محمد و ابو زرریت اللتی بقیه اتینا من رسول الله و اعلم و رجل من المهاجرین سهمن فی الجهاد فلوانی یا اینی کلیفت و نقل الجبال رواسی کوهای بزرگ رو هم جا به بکنم و نزه البحور توانی دریاهای خروشان پر حتی یکی علیه یومی فی امر اقردی بهی ولی و, و اوهنو بهی عدو وک ما رأیتو انیقد ادیتو فی کل الگی حق و علیه من حقه کوهای بزرگ رو هم بکنم باز هم حقه شما رو انجام بددن فقال امیر المومنین سوامالله الالیون اللهم نذر قلبه به طبا ذهدهی الى صراط مستقیم لیت انفی جندی معتن مثلک فقال حج ادن و الله یا امیر المومنین المؤمنين جندو و وقل فیهن من یه حشت که با من هم اینها واقعی هستن اهل قشور قدر نیستن ثم قام حج فقال یا امیر المومنین نحن و بنال هر و اهلها الذین نلقه ها یا نلقه ها همه شد و ننتج ها ما جنگ روز میکنیم در, زارست زارست در زارستنا و زارستنا ها در زرسن در, در نموزش هم این با ما تا آخر نیروش جنگ ها به کار بازن ما هم در مقابل اونا بله ولنا احوانون زاو سلا و عشیرتون ذات حدد و رعیون مجرد و بحثون محمود و از امتنا رسمان اما گردند بسازید و از امتنا منقادون لکه به سن و تایه فه شرخته شرختنا و این غررته در و ما عمرتنا بهی من فعلنا و قال علیان علیه السلام و کل قومو که را مثل رعیه قال ما رعیتون من هم اللہ حسنان و ها بهی یدی هم هم به سن و تایه و به حسن الاجابه فقاله با علیان خیلیم حالا سنر در دنبینی که خیلی هم سند واضح هسته اهل فید با من که مثلا الان از عمر کندیم و از این کلامات سهاده و, و از اجایب نیه که اسکافی که از بزرگان اهل سنته در کتاب المعیار و الموازنه ایشون اینجور داره در اسکافی وکان علیه السلام من مبالغتی فه دعا و خسن سیرتی فلکت عن العذاب و دعایهی بلکیهی احسان، اقتدائن به ادب الله و طلبن لما و اصله انهو لما بلغه و هوا ان اصحابه انهوم یکسرون شتم مخالفیهم به و سب ارخل علیه من کفو فا اینی حق عجیب که این سونی اسکاپیه معروف که بر علیه ما هم داره در میار موازنه ایشون سر میکنه اسمتایی مهم از کلام امیر المومنی الله علیه برده بشید این روز درس کلام